به خوشنودی هرامزده و, و با اندیشه و گفتار و کردار نیک و با, با درود بر روان و فرابهر عشور زرتشت سپنتمان و همه زنان و مردان نیک و پارسای گیتی از گم عمرت و جمع, جمع گرفته تا همه سی و های پیروزگر و سودرسان از دیروزها تا به امروز و تا به فرداها و درود میگم به همه شما کسانی که به این سخنان گوش میدهید تا شاید که بتوانید بسنجید و برگزینید و دانشی بیاموزید و شاید هم که تنها از روی کنجکاوی به این سخران گوش میدید که امیدوارم برای شماها هم آگاهی هایی بر داشته باشه و شاید که به برخی پرسش های شما بتونه پاسخ بده آنچه که در این سری گفته را خواهد اومد چیز چیزی تازه ای نیست و بازگوی همان اندیشه ها و دانسته ها و آموخته ها و آزمون های من هست از دین و آین بهی و زرتشتی فرهنگی ایران شهری و البته آزمون های خودم در زندگی که در دیگر نوشتار ها و گفتار هم, هم در تارنمای خودم و در دیگر رسانه ها آمده و گفته شده و اکنون هم تراشی دارم تا به صورت یک سری فیلم های کوتاه در دسترس همگان بذارم که چندیست قرشو داده بودم و امیدوارم بتونم تا جایی که میتونم به این قبر وفا کنم البته این رو هم باید بگم چون جزوی از آموزش است که من هم با گذشت زمان و سالها بیشتر آموختم و آزمودم و امیدوارم که پیشرفت کرده باشم و که تجربه بیشتر میشه همه چیزم هم در یک در یک دونه در یک پرسپکتیو قرار میگیره و امیدوارم که بهتر بتونه داوری بشه خب در این بخش آغازین میخوام از بлки پیش زمینه ها و بنیادها براتون بگم زیرا که اینها پایه ان و آنچه که پس از این اومد اومد بر این پایه ها استوار هستند مهمترین این بنیادها ها از هست به نام باور باور یه البته اگه بخوایم به خود واژه نگاهی بیاندازیم ور یک واژه کوهن هست که ماناش یا چیمش همون گزینش هست ببینیم که راستی آن باورهایی که ما داریم بر اساس گزینش و از روی آگاهی آمده است یا اینکه از جای دیگر آمده است و چگونه است مهم از زیرا که اساس جهان جهانبینیست و اون است که اندیشه و گفتار و کردار ماره میسازه فرهنگ میسازه و میشه گفت که همه چیز میسازه خشت نخسته است که بقیه چیزها بر روی اون ساخته و گایی هم میتونه خراب بشه پس مهمه که بدانیم باور چیست زمانی که میگم باور در اینجا آرش سخن یا مقصود و منظور من تنها باور دینی مذهبی نیست بلکه باور به شکله زیربنای کلی و همگانی اون یا شاید بگم باور شخصی است ها و اون تصوراتی که هر کدوم از ما در زندگی و از زندگی داریم برای هر کدوم به عنوان یک حقیقت تا این زمان به شمار میاد چند نمونه براتون از این باورهای کلی میگم که بدونید درمونه چیز رفت سخن میگم باورهایی از دست این که بگیم همه چیز گونهای باور هست یا هیچ باوری وجود نداره برخی چیزها رو نمیشه دیگرگون کرد همه چیز گرگون شدنیه باور و حقیقت یکی نیستند باور من خود حقیقت چیزی نیست که من نتونم انجام بدم من کار دستم دستم برنمیمت من نادارم من دارا هستم من میتونم دهش کنم ببخشم در برابر من باید پس انداز کن. چون پول به دست آوردن سخت یا نه پول به دست آوردن بسیار ساده است هیچ چیز ارزش مبارزه نداره برای برقی چیزها باید مبارزه کرد. یک تن به تنهایی نمیتونه کاری از پیش ببره هر کسی میتونه کاری انجام بده سخته چون آسان نیست چون که ساده است چون انسان باید واقع بین باشه برای من شدن این اسمان نمیتونم آنچه که میتونم خواهم کرد من آدم خوشبینیم من آدم بدبینیم و و و و سرانجام فرقیم نداره که من چه باوری داشته باشم بسیار مهمه که من چه باوری داشته باشم خب همون کنه که گفتم زندگی همه ما بر پایه باور ساخته میشه و و میچرخه این باورهای ما هستند که تجربه های ما رو در زندگی میآفرینند. نه اینکه تجربه هامون باورهامون رو بسازند. میتونم بگم که روند ناخداگاه زندگی این است که چون ما باوری و پیشورزی و تصوری داریم و اینها هم از کودکی و خودسالی در ما همون زمان ساخته شده و آفایده شده ما بر اساس این باورها رویدادها و آزمونها و تجربه هامون در زندگی در همین راستا می آفرینیم تا که اونها رو خوراک بدیم و به خودمون ثابت کنیم که باورهامون درسته درست هم. و برای که کامنتار گفته باشم تازه میخوام بگم که این بخش خوبشه یعنی ما اگه بدونیم چرا داریم یه کاری رو انجام می‌دیم خیلی وقتا یک رفتارهایی که از ما سر می‌زنه که برامون هم خوشایند نیست برای دیگران هم خوشایند نیست و شاید خیلی هم به ما زیان برسونه ولی نمی‌دونیم چرا داریم این کار رو می‌کنیم که اینها از روی برق باورها میا که این باورها باور اکنون برای ما شلاخته شده نیستند نادیدنی شدن بهش میگن ترانسپرنت شدن یعنی یه روزی در واکنش به یک رفتاری از پدر مادر با یا اون آموزگران نخستینمون در زندگی انجام دادیم حالا دفاع از خیش بوده برای رسیدن به یه چیزی بوده که بعد از یه مدتی اون رفتار انگیزه نخستین از میان رفته ولی واکنش های ما همچنان ادامه داره که این برامون خوب میشه عادت میشه بهش میگیم باور شده و اینا هم اصلا که برای در زندگی مشکل ساز و دشواری آفرین میشه حالا بیتونیم در برابره پرسش بکنیم بپرسیم که آیا اون باوری که داریم آیا به ما در زندگی یاری میرسونه پشتیبانمون هست آباد کننده هست پیشرفتنده است، شادی آفره و یا این که نه برای اون دشواری می آفرینه زیانبار آزار میرسونه و همه اینها معمولا در رابطه فقط با یک تن نیست با گروه و هازمان یا جامعه سنجیده میشه پاسخ به این پرسش بر پایه این آگاهی شکل میگیره که انسان معمولا به سه گونه خودشو در زندگی شکل میده و خودش رو می آفریه در واقع می سازه باورها شد یکی از راه همسو کردن هماهنگ کردن خود با چشمداش ها و توقعات و انتظارات دیگران حالا یا از روی خوب کمبی یا از روی برتری است و دلال دیاری داره پس اینا در واقع به خاطر دیگریست که ما یه چیزهایی رو میپذیریم و انجام میدیم و میباوریم. دو از روی استادگی و مقاومت در برابر یک کسی یا یک گروهی یا یک اندیشهی که ما دشمن میپنداریم می و بدخواه میپنداریم در برابرش موضع میگیریم و یک باورهایی رو برای خودمون برموضیم و یا این که نه از ثومین و بهتری را اینه که آزادانه و آگاهانه باورهاون رو که البته این هم به این سادگیریز داستانی دراز دارد که آیا ما آزادیم؟ آیا ما آگاهیم؟ همه اینها خودش رو داره و بسیار باید کار بشه این این یک بازنمود و تعریف کلیست تعریف که من میگم باز میگم واجه ایرانیست اگه بازشناسایی بازنمود یا واجه پهلویش ویمندی میگن ویمندی میتونیم شاید رو به کار ببریم برحال من هر کنوم از همه اینا, هم اینا رو ممکن در جای به ک بر همین پایی هم میتونیم باورهای دینی مذهبی رو بسنجیم و بررسی کنیم این گونه ای از سخن در مورد باورهاست در یک گروه بندی دیگری از باورهاست یا سیستم های باوری سامانه های باوری رو به سه یا چهار بخش میکنن نخستین گونه یا بدترین گونه های باوری است که بر پایی ترس خشونت تردید و چیزهای منفی در واقع میشه گفتش که ساخته شدن و با همون ابزار هم نگاهداری میشه باورهایی که از این دست هست که اگر چنین بکنی چنین میشود اگر چنین نکنی چنان میشود حالا اگر دیدگاه دینی مذهبی رو, رو در واقع میاریم توش جاد در دوزخه در آتش میسوزی کافری و از این دست که اینها بدترین گونه های باوری شراخته میشن دسته دوم اون بشمیگن من بش میگم خرافه های همگانی چیزهایی از این دست که شماره سینزه بچه گونه یا اگر پرشته میکنی یا عطسه میکنی باید کمی بمانی، کمی بیستی صبر به چوب میزنیم برای دوری از چشزه و مانند اینها که البته اینها خب زیانی ندارن به اون معنا ولی خب سودی هم ندارن. چیزهایی چیزایی از که زمانی زمان ایران دلالی به وجود اومدن خیلی هم همگانی هستن یعنی در تمام دنیا به گونه اینها هست و خب من آزاری از اونها با اونطلا نمی‌بینم. دستا سروام اون گونه باورهایی هستن که باورمندان به اونها بر این باورن که اینها دانشی هستند. و علمی هستند و جای تبدیدی هم درشون نیست اما گروه چهارم بهتر بگم انسان‌های گروه چهارم انسانهایی هستن که با آزادی و آگاهی در هر لحظه باورششون رو برمیگذینند یا میافرینند و یا دوباره از آفرینش به بیرون میبرند از خودشون به کنار میگذارند و پایه گذینشمون ها هم بر راستی و درستی است خب اکنون پس از این همه زمین چینی و مقدم چینی که نیاز هم هست بخ... میپردازم به سخن خودمون که همان دین بهی باشد البته باز اینجا یک مندی باید بدم از این که من چگونه دستگم میاندیشم و چه همسانی میذارم بین دین و مذهب که البته خیلی هم این گونه میگویند و این گونه نگاه میکنن به داستان که اگه بخوام خیلی ساده بگم مذهب یعنی خرافات و یک سری آین هایی که پایه این خرافات بناشده اما در برابر اون دین در بازنمود زرتشتیش یعنی دانش زندگی یعنی دانش درست زیستن شاد زیستن بهزیستن و دیگران و جهان رو هم شاد کردن البته شادی در مفهوم گستردش که باز در آینده بیشتر از خواهیم گفت البته این هم باید که در نهایت اینها هم باور هستند باور به اینکه جهان جای نیکیست و ما آمدیم و هستیم تا را نیکتر کاریم و با بدی مبارزه کنیم تا جهان رو جشگاه بسازیم تا بهشت رو بر روی زمین برپا کنیم چنین باوری هست از دیر من که نتایج نیک به بار میاره چنین باورهایی هستند که ما را به زندگی امیدوار میکنند به چالشی نیک خواهانه میکشونند و گاه حتی به مبارزه بر در مورد آرامش مفهومون و راه های به اون هم در آینده بیشتر سخن سخنگاه گفت. به که توان و امکان اون رو بیابم. برای این بار به این سخنان پایان خاتمه میدم، به پایان میرسونم و با شما به میگم شادی براتون آرزو ماندم تا سخنی دیگر و فیلمی دیگر با شما بدرود.